بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ و صلات و سلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و على و اصحابه طیبین الطاهرین درست امروز ما شما سر وطیله واسطه و شفاعت است اصلا یک موضوعید که ما شما همیشه باید اینجا در نظر داشته باشه مسئله فامیدن اصطلاحات قرآنی هست و ما در تحقیق میکنیم ضرور است که ما با شما بحثای معمشه اکادیمیک باشه لطفا وقت شما در یک جای آکادمیک قرار دارین خود درک کنین بشناسین که ما یک انسان استم یک معصول پوانتون هستم و اینجا پوانتون است در که اینجا دادم میشنه و بسته با کدام یا مذهب یا طریقه است. به ما قرآن شناسی و اصطلاحاتی که از اعتقادات اسلامی در قرآن و سرنت هست او را تحقیقات کردیم ریسرچ هایی کردیم ما استاده پوانتون خلاصه ریسرچ های خدا بر معصیلین میدیم برشان بیان میکریم اگر کس کدام نظر علمی داره کدام نظر داره که او هم تحقیق کرده بفرمایه نظر خدا بگویه اگر مثلا چیزهایی که ما تحقیق کردیم مطابق فهم محس و هر انسان میشه اشتباه بکنه میشه درست باشه تحقیقش قایده اسلامی چیست؟ من اجتحده و اصابه فله اجران و من اجتحده و اخطاعه فله اجران واحد یا کسی سعی تلاش و اجتخاد و سعی کوشش کرد خاص مفاهیم قرآنی ده یا دین مقدس اسلامه یا هر چیز دیگه که از هر چیز که مربوط به علم تحقیق میشه اجتهاد کرد، زحمت کشید وقت خدا داد، تحقیق کرد نظریات مختلفه متعلقه کرد تا حق بفامه اینجا پیغمبر سامهه که اگر کس اجتهاد کرد و اجتهادش به ثواب بود لیکن به شردی که ای اجتهادش به اساس اخلاص باشه نه به اساس تعصب خودخواهی، خود نشان دادن خود تبارز دادن و یا نظر خاص و شخصی خود بالای مردم تحمل کردن یک کس میخواه میخوایم، یک حقیقت. مطالعه بکنم، تحقیق بکنم. خلاصی اونموری و تحقیق خدا برای شما میگم به نه اگر می کسی اشتحاد و زحمت کشید نتیجهش ثواب بود فلهو اجر خداوند رو دو عجر میته. عجر زحمت کشید و اجر رسیدن به راه حق و درست و من اشتحاد و اخطا اما اگر یک کسی دیگه که اجتهاد کرد ولی در اجتهاد خود در تحقیق خود اشتباه کرد با حقیقت نرسید فاله او عجر واحد میگه او هم عجر خدا داره یک عجر داره چرا؟ به خاطر ازی که از آمد کشیده خواسته به حقیقت برسه ولی نتانسته به نان خداوند اجیر شمیده و فاداش شمیده اما کی گناه های زیاد میگره یک کسی که در نظر خود تعصب داره نمیخوای حق بفهمه یک چیزی برش به شکل فرهنگی آمده مثل که بودفرسته رو وقت بود میکنین یهو تاخره صلاحیت عبادت ندارن میگه گفت که ما فدراهای ما رو نمیخوستم میافتیم تو دوامدیز زده گپای فدراهای ما گف میذاریم ما این قسم رواج ماست. ما ای مذهب ماست. ما این قسم مذهب ما ما این نمیخوستم طریقه ما این نمی دینی ما سیم روز اومدی برام ما گپای نوامیدین بران کسایی که میخواستن به حقیقت برسن رسیدن و کسایی که نمیخواستن حتی یهودیات که بر خوب میفهمیدنم قبول نمیکردن عدلشون اینا در دین مقدس اسلام این نمی اسلوب است و ما وقتی که یک چیزی رو میگیم خب ما گردششاد کردم ایش تو نظر ما به نظر شما درست نبود ما کسی رو تحمل نمی کنیم که حتما تو باید گپای مرا قبول بکنی خودت شهادت کن خودت تحقیق کن خودت بگو از خلو تو احساساتی بحث نکن که والا مصحب نظر ما صاحب صادق نمی نظر ماست و ای چطور میشه و چران میشه اگه اگر میگی که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و زنده هست درست است انسان از نگاه ما بحث ما سر دنیا هست وقتی که انسان روح انسان خلق شد بعد که در انسان داخل شد خب این انسان اگر روحش از جسدش جدا میشه، طبعا روح ازی یا در جنت است یا در دوزخ هست اگر به این سا آخرت میگه کل اکی قرآن از مشاور میگه شما کسایی که شهید است صورت فکر میکنه که مرده هستن اونا نه مردهن زنده هستن الا در کجا رزق میخوره این دنیا نمی دونن میگه این درب بهم پیش پروردگار خود در اونجا رزق میخوره اینا وقتی که ما این کلاکی زنده هستن پیش ما زنده نیستن اگر زنده بود بس خانه میذ نمی تونه شوره دیگه بگیره خانه شهید از دگاه ما یکی که پیش خداوند زنده هست شهید بله زنده هست ای که پیغمبر را زنده هست، ولی زنده هست. روح کلاگی وجود داره، ولی داره. اما در قرآن عظیم الشان میگه که اینا از نگاه دنیایی به نظر شما مرده هستن. پیغمبر صا که انک ای میتون. ای پیغمبر تو میمیری. حتی در زمانی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم وفات کرد، یک تعداد از صحابه احساساتی برخورد کردن و گفتن کی میگه که پیغمبر مرده؟ هر کسی که بگه شمشیر گردارش میپرونم. اما حضرت اباکه صدیق آمد آیه قرآن خام به پیغمبران هم اینمی آیت ما شما نخوندیم که تو هم پیغمبر راستین دیگر پیغمبرا هم پیغمبر بودن اونا هم فوت کردن تو هم میمیری افا امات او قتل لن قلبت ملا عاقبكم اگری پیغمبر بمره یا کشته شون شما با دین ترک میکنین بنا پیغمبر وظیفه خود انجام داد وحی را آورد مدت زندگی پیغمبرسان چند سال است 63 سال خیلی کسایی که میگه زندست باید نگوید 63 سال لگه بگوید که 1300 و چند از امون روز تا بگوید تا باله یعنی 1430 خواهد هجره تیر شده و پیش از هجره پیغمبر سلم چند ساله بود تا سرش بحث آمده که چند سال لگه هم سرش بر تو خیلی پیغمبر سلم یکونی سال است یعنی ما بحثای احساساتی نباید بکنیم وانا کوشش نکنیم، من هم کوشش نمی‌کردم که احساسات خودت هر کس قبولونم من یک بحث یک تحقیق میکنم، من برات میگم اینم می یک تحقیق است می که نازت حاصل خوب خوب خوب نمیشه خانه تابوت اگر خنات حاصل شد یک دفعه خانه تابوت قرار حاصل نشد در دفعه خانه تابوت قبول کردی یک دفعه خانه تابوت قبول نکردی در دفعه خانه تابوت من موکلات تو وظیفه خودم من است استاد تو گفتم شرط نشد. که تو مثلا یک و شما محسلین انجینیری هستیم یک و میبرتان پنج منزله را درست تو بسیار جوان و لکس هستی پنج منزله را برنامه میکنی یالا بکن ساخنه میری که والا تو پی... نکو یالا تحقیق کن یالا بخان یالا ریسرچ کو و از بوده با زیب نظرات هم که اما احساساتی خود نکو کوشش نکو که نظریات هم. اطرافمید باید بعضی کسانو بعضی مردین آن دان وقتی که اگر نظر داشتند رو میخوام که عثمان کار اوضاع بخبرونان ک ما ولی موت میگم ولی خشیتوش ولی شناشت. پر از گفت کل مسلمانان با ای ارکسی که مسلمان از در دنیا با ای خنادر که پیغمبر است سلام شهست سه سل سال عمر کرد. در کل کتاب های کل مذاهب. بر ارک کتاب تیرتر در مذهب که میخوام میگه پیغمبر است چند سال بود که چند سال زندگی کردی دنیا. شست سی سن سیس پیغمبر نهان و سلام وفات کردن سیس کل صحابه و آل بیت پیغمبر اتفاق کردن که پیغمبر وفات کرده به گفتن برای پیغمبر باید چی باشه جانشین باشه ایکی جانشین رو کی رو تاین کردن و چی خصم تاین کردن این خودتان کلتان می فهمی. اما پیغمبر فاوت کرد یکی نفر میخواد برمه بگید نه پیغمبر ایو صاد مدان اتحیات مگم لله و صلواتو اسلام یعنی ما نشید که اسلام علیکا پیشود پیغمبر شید شبش میگه اسلام علیکا و ای اک روایت است که موتو برا ما آمده حدیث میخوانیم اینو میخوسم آمده که اتحیاتو لله و صلواتو و طایباتو اینو میده نمازتان بخاریم. اما ما میگم پیغمبر سرسلام فاوت کرده قبر جمع دینی است هست خیلی وقتی پیغمبر نمورده خیلی قبر جمع دینی منوری. قبر که هست قبر که یعنی احساسات در عقیده پذیرفتن نمیشه گفای خودم تو خوش داری پیغمبره میگی زنده هست اما واقعیتش ما هم خوش داشیم کنش که رسول خدا صلی الله علیه وسلم زنده میبود ایواز ممیمه گپ میزد ما هم خرار چه چی من است شاگردش از گپاش استفاده میکنیم. ولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفاد کرد و کلو نفس زائقت المرد خداوند مطالبه که هر صاحب نفس لذت مرگ میچشه او هم وفاد کرد ما هم میموریم ردبیشان آلی تر بود بود به انکار نداره. وقتی که مقام یک انسان خداوند بلند برده پس ما را چرا زور بته؟ تو رو چرا زور بته؟ اما میگه که اینمی مقام بلند داخل یک چوکات هست یک چوکات بندگیست بلند آل آلویت پیغمبر، صحابه پیغمبر، تمام پیغمبران مقامات عالی داشت اگر من خوردابت هستم فرانی شخص جمرال هست لیکن من هم انسان هست، مو هم انسان هست، پنده هست محبوط نیست اینال بحثای ما همیشه باید اساس یک تحقیق یا قران شناسی درست باشه اما اینکه تو خودت شخصاً چی اعتقاد داری و چی باور داری و چه قدر احساسات عالی داری این دس از نات ماي بزنس يبقى نمیگیرن کار شخصی خودت است اما آن چهار تمام علمای اسلام پذیرفتند که پیغمبر صلوات الله علیه و 63 ساله بود پیغمبر صلی و کرد بر پیغمبر است جانشین تنگ کردن و کلیمی ای که اینی جانشین پیغمبر است اینی فلانی جانشین پیغمبر است هر وقتی که پیغمبر زنده می بود خلاص اذرات و جانشین نبود اینی قبر پیغمبر است کل مسلمان ها وقتی که به حج می باز به با مدینه منوره می روند در نبوی نماز می و اونجا میگه اینی قبر پیغمبر خدا صلی الله و علیه و سلم است بنا بر یک زندک از قبر جور میکنه بر ما زنده باشون در زندگی بر بر ما قبر جور کو بگوسم امیر قبر سچایم چی قبر چیه؟ خدا خرابت کنه که تو قبر ساختنه مازنده است می‌دونی تو رفتی بر من قبر کردی. آه اگر مردم، باس قبرم می‌کند. شاید بچه‌ای که بگه کنی پدرم نمرده. آن‌ها ما شما نمرده. حالا پدر ما که دونم مردوان جنازش برا دفنش کردن خب امروز موضوعی که ما می‌خونیم موضوع وصیه و استعفا و شفاعته. نه مثلا مسئله هم بسیاری کسا بر احساساتی دارن. ما تفکر کردیم از نظر اولامه مفسرین. از مذاهب مختلف نظریاتی که داشتن گرفتین این آله این نظریات که ما قناعت من را حاصل کردن من این این نظریاته برای شما میگم این که چند فیصد تو قبول میکنی یا نمیکنی دفعه انتون کس هر کس چیز را تحمل نمیکنه اینی که پس اینی ما تو میگم فلانی تو میگم دل تو که کدامش اختیار میکنی قبول کردی خانه تو قبول نکنی داره بسیاری است ما در خط مثل سر ببینیش اون بار نماز نه خلاص خلاص ما مخه یک روز ما كات يک ولندي بحث زشون ولندي تقریبا سه ساعت 3 نیم ساعت مکتش بحث کردم در باره توحید و دین خدا ساعت سر سفره خان وقتی که نان می خوردیم ما گفت خب من نمیخوام که مسلمان شوم من گفتم نه دلت گفت تو خفه نميشي ما وظیفه من تو نه ميخايي ما رو مسلمان بسازي ما ما تر مسلمان ساختا نميتونم ما مسلمان ساختنم نمیتونم. دوکی مرا مسلمان میسازد. من گفتم سعی کنم. خداوند مثال به پیغمبر سام گفت که اینما علیک البلاغ و علین الهد. ای پیغمبر، وظیفه تو تبلیغ است. رساندن حق است. هدایت کار ماست. گفتن کار ما هست، اما هدایت کار کی است، کار خداوند جلال جلوه است. اگر تو بخوای قلبت به خداوند بدی و ببین خدا امرا هدایت کو. خداوند هدایت میکنه اگر دلیل میکنین فهم قرآن میفه گفتم من بر تشریح کردم که خداوند ذاتی یگانه هر زرا ضرورت به فرزند نداره ای که مسیحی ها چه بچه داره و چتو داره این دلایل نه عقل قبول میکنه و نه وحی قبول میکنه و نه هیچ پیغمبر و هیچ انسان ای که تو میپذیری یا نمیپذیری مسلمان میشی یا نمیشی اگر به خداوند دست دعا بالا که خدایا بر من هدایت کو خداوند بهت هدایت میکنه نخواستی میکنه ذالک الکتاب خداوند میگه این کتاب است کتاب چی است کتاب هدایت است هدن است برای هدایت است برای متقی متقی کی است انسانی که خدا از تعصبات رهایی کرده باش انسان متعصب اگه در خانه یک مسلمان هم پیدا شده و او هدایت نمیشه چون اون نمیخواد حق ابو میگه خلاص اینا میچیزیه که با پدر ما برای من گفتن من اینا قبول دارم متصبینی که در قریش بودن وقتی که پیغمبر بهشون میگه که خدا نه نه نه نه من هیچ میگه من زین خدا I close my, my mind میگه من قلف کردیم سریزه؟ وقتی, وقتی که زین خدا قلف کرده ایناله چی میگه؟ میگه که وقتی که قلف کرده باش میگه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدا من یکی سی بطحاب چه خودتان ساختن چطور چنست؟ میگه نه نه نه نه ما دیگه جل نمیم ابتاد زمان نوح علیه السلام گفت یجعلون اصابه هم فی اذانهم. کل گوشهای خود انگشت میگیرن اصلا نمیخواستن که پای پیغمبرو بشنون آیا یک کافر و بدینه که نمیخواد حق بفامه و او کافر و بیدینی که انگشت خود در گوشهای خود داخل میکرد تا سخنان نوح علیه السلام نفامه و میگفت که لا بوتایتون اعلان ن... ترک طرف سور نوح علیه السلام رو آیا او بر شخصیت نوح علیه السلام کدام ضرری رساند آیا پیغمبری نوح علیه سلام متاثر شد نه حال سلام مو پیغمبر بر نه حال سلام دارای عممو شخصیت نه حال سلام با اونمو شخصیت عالی خود ولی اونها انگشت های خود در گشاه خود میگیرفتن و دذر کمپالا و که یااپ خود پوت میکردن که ما باید پقمبر نبییم گشا ما شننوود وقتی که نشود خلاص آیا نه حال سلام چیز نقص کرد نقص کسایی کردند که نخواستن حک بکنم اما نه حال سلام رودبیشامان مقامشامان این حالا هر کسی که دعوت میکنه برای حک میگه او مسئولیت خود اددا میکنه ان فیصل او را قبول میکنه و قبول نمیکنه کنه. این وظیفه شخصی هر کس است. لکن خداوند کس رهبریت می کنه که او تقویت داشته باشه. و او بخوای به حق برسه. و بعد از چیزی که برای گفتمش از داره یک فکر بکنه که والا این گپو گفته شد. آیا این گپو مأکول است یا این گپویی که من فکر کنم این مأکول است؟ اگر گپوی من مأکول بود خوب است. قراره بیشتریت با من بیبی قرآن چی میگه. اگر دیدی که گپوی من مخالف قران است محسنات نیستم. تو خودت دریام میفهمی، پشتو میفهمی، عربی میفهمی، انگلیسی میفهمی، ترجمه های قرآن است بخواد. این ال موضوع وقتی که سرواسیله واسطه و شفاعت ما یک بحثه بسری کسان احساساتی برخورد میکنن، بعضی کسا هست که تحقیق میکنن، قرآن هم میخونن و با شناخت خود از قرآن عظیمشون نتیجه رو نتیجه میگیرن و مطابق ازو عقیده خود جور میکنن. یکی مسئله وسیله هست، دیگه واسطه هست و سهومشون است. این اول وسیله چی هست واسطه چی هست و شفاعت چی هست اگر ما می یک چیزی رو در آخرت بفهمیم اول باید رو در دنیا بفهمیم وسیله در دنیا چی هست وسیله در دنیا چی هست میگه وسیله در دنیا مثلا یک کس می که اول نمره شبم خب اگر میخوای که اول نمره شه بر اول نمرگی چی باید بکنی باید شب روز دست بخونیم ریاضی رو خوب صحیح بگیریم درد درس بخونید، مواد رو یاد بگیرید، زیاد یاد بگیرید، مبامین رو بخونید، نوت بگیرید، شب روز درس بخواید. اینی اعمال خودت دی این کارا رو من برات بکنم؟ این اعمال خودانه. نخوادولتاست، من ما من پانتونا بسیار رویدار هستم، من این کارا رو ای بیا پیش من من برات بکنم. بس اعمال خودت. درست؟ تشکر. تو گمیتروالو براشویچ میگی باید بکنی؟ تو اگه بخوای بخوایوالو براشویچ میگی چیکینی؟ با درس خوندن. دیگه فقط با درس می‌خوایم. مثلا چه قسم درس بخونی؟ از حد نرمال زیادتر باید درس بخونی که از حد نرمال زیاد درس بخونی؟ باید مثل تا درس بخونی؟ باید نوت بگیری؟ باید دست نفر باشی؟ چرا نمیری مثلا پیش یک نفر دیگه که او آدم خوب است و رئیس پانزده مشناست او بر سبت نمره بگیره؟ کار خوب نیست؟ کار خوب نیست؟ سعی کنین انال در دنیا وسیله اعمال نهی که خود انسان یک محصول میخوایی که اول نمره شده کدام وسیله میتونه اول نمره بسازه؟ درس خودش سهیست نی؟ بناهن وسیله چی شد؟ وسیله اعمال نک خود انسان است در آخرت وسیله چی هست؟ در آخرت هم باید اعمال نک خود انسان باشه چرا؟ به خاطر این که وقت قرآن ازی میشونه باز کنی. خداوند متعال برد و العصر ای خسر. خداوند قسم یاد میکنه به وقت تو انسان فکرت باشه که تو به طرف نقصان در حرکت هستی. سبا امکان میرسن و تو در امکان اگر به تفاوت باشی ناکام ایمانی کی کامیاب میشه در امکان کسی که سی عمل کرده باشه آمنو ایلالذین آمنو ایمان داشته باشه و عمیل صالحات و اعمال صالحه بکنه و تواصف حق و تواصف بزور یعنی مردم دعوت کنه به حق و دعوت کنه به صبر وریکی ها بنان ایمان اعمال و دعوت ایمان که ایمان داشته باشی مؤمن باشی و چیزی که در قرآن آمده اعمال صالحه که خودت یک انسان صالح و نیک باشی و دعوت یعنی که تو مصلح باشی یعنی دیگر آره هم به طرف حق دعوت بکنی اینی سه عنصر میتونه که ترا بده. و این کاره خود انسان میکنه یا کس دیگه بر انسان میکنه خود انسان میکنه خداوند متعال جل جلاله در قسمت وسیله برمو چی میگه؟ خب ببینین آیت قرآن است اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله خداوند متعال که ای انسان ها شما از الله بترتن و بتغوا الیه الوسيله و با خداوند وسیله بگیرین اینا مومنین که مفسرین کرام درباره و تقوا الیه الوسيله اینا که برشا گفته شده که شما وسیله بگیرین اینا چی وسیله میگیرن آیا وسیله اعمال نیک خونه میگیرن و یا وسیله کدام چیز دیگه نمیگیرن مفسیرین کرام وسیله را چی گونه تفسیر نمودن مفسیرین آیا به معنای کمک خاصن از انسان انسانهاست نخیر آیا به معنای کمک خاصن غیر ذات الله جل جلوه جل از کس دگیر نخیر اینال مفسیرین کلمه وسیله را چی گفتن میم تفسیر جلالین یکی از مفسیرین کرام که تفسیر کرده ای آیت شریفه تفسیر جلالان بسیار تفسیر مشهور است گفته که وابتغو یعنی اطلبو طلب بکنین الیه الوسیله با خداوند وسیله ما یقربو الهی که یقربو کم الهی من طاعته چیز رو وسیله بسازن که شما را نزدیک بسازن به خداوند یعنی طاعتهای خداوند یعنی شما نماز بخانین روزه بگیرین ایمان داشته باشین بالاخره ای سبب میشه که شما را به خداوند نزدیک بسازم. تفسیر تبری وابتخو الهی الوسیله وطلوب القربة الهی بالعمل به ما شما میگه وسیله را بخواهین ای چیست وسیله؟ ای وسیله وسیل؟ میگه به برای خداوند وسیله خداوند متعال میگوید تقرب و نزدیکی به دربار خداوند متعال را به عمل نمودن به آنچه خداوند را راضی میگذنن طلب نمایید. یعنی که وسیله چی است ها وقتی که میخوای خداوند راضی بسازی گفته چه گو با عمل نمودن با آن خداوند را راضی می‌گذاری طالما عمل نمودن با آن خداوند را راضی می‌سازد چی خداوند راضی می‌سازد مثلا نماز گرفتن نماز اعمال انکه خود انسان ایمان اعمال صالحہ و دعوت به نیکی ها صحیح است نه تفسیر ابن کثیر تفسیر ابن کثیر هم از تفسیری بسیار بزرگ است در اینجا ابن کسیر چه میگم؟ بگه قطاره گفت ای و الیهی به طاعته والعمل بی ما شما تقرب بجوین به خداوند به طاعت خداوند و عمل به آنچه که خداوند رازی میسازه این تفسیر ابن کثیر بود یعنی عمل به چی؟ عمل به چیزی که خداوند رازی میسازه چی خداوند رازی میسازه؟ ایمان اعمال صالحه و دعوت دیگران به نیکیهان تفسیر بحر مهید این تفسیر دیگه هست. که بزرگترین مپسرین است و چندین کار تفسیری در کل دنیا چیز دارند. میگه نصده على الجهادی و اینکانمون درجند تحت ابتغاء الوسیله. لان نبیه لأن صلاح الارض و بهی قوام الدين و حفظ شریع. میگه منظور از وسیله اینجا چی دیگر اعمال داخل میشه. میگه چون بعدن کلمه جهاد آمده بناهن وسیله خوب بر رضایت خداوند متعال جهاد در راه خداوند است. که تو با دشمنای اسلام و دشمان حق جهاد بکنی بنا ان جهاد عمل خود انسان است. یه کسی دیگه میکنه یا بر انسان تو ما مقلال خواستم باز خیرستم دوگاه باز برمشی کنن نمیشه عمل نیکی ای که خود انسان است. تفسیر المنتخب دیگه تفسیر هست میگه وطلوب ما یقرب کم الى ثوابیهی من فعال طاعات والخیرات میگه بیکونین کار بکنین شما را به طرف خداوند به ثواب خداوند نزدیک بسازه من فعل یا طاعت، یعنی طاعات را فعل بکنین، عمل بکنین و الخیرات منظور از خیرات در زبان عربی کارهای نیک و خوب بکنین. بران این شما را وسیله تان میشه شما را به خداوند قریب بسازه و خداوند راضی شون. و این به خاطر چی میگم؟ چرا خداوند وست جد که خداوند متعال میگه وسجد و وقت سجده کو که قریب شوی. سجده کو سجده عمل خودت است. اینا رو ببینین که همه به یک مطلب اشاره کنن و اون مطلب چی هست؟ تا که وسیله تقرب اعمال نیک خود انسان هست کل اگه میگه که وقتی که میخوای با خداوند نزگی مفاتیح الغیب یک تفسیره. هست شما ببینید تفسیر مفاتیح الغیب میگه که ای بفهم ایو جوان انما جامع تکلیف محصولتون فی النوعین لا صاری صلح تمام تکلیفات در دو چیز هست احر همان ترک المنهی گفت اول شما چیزهای بد رو و الیه اشاره، الاشاره مگه به طرف اشاره کرده چی چیزه و وقتی که مگه تقوا کنم میگه دای یات دو کلمه چی گفته و تتقوا الله منظور از و چیست؟ که شما از کارهای زشت خدا چی کنین وقایه کنین دوری کنین و دوم کلمه چیست؟ گفته که فعل مأمورات چیزهایی که امر شدین او رو باید بکنین و اشاره کرده به او به طرف از او به چی و اشاره کرد به او به قولش و افت به الیه الوسیلة. انال مفاتیح الغیب چی خوب میگه. میگه کل کاری که در شریعت است، تمام تکالیفی که بالای یک مسلمان است در دو نقطه نهفته است. نقطه اولی چی هست؟ نقطه اولی است که تو باید کارهای زشت رو ترک کنی. و او رو میگه خداوند بجو که واتقوا الله از خدا بترسین، یعنی خدا به قایا کنین از اعمال زشت و بعد و دیگه آیه ادبی آیه شریف ما کلمه دومی اومده که گفته وتبو الهی الوسیله یعنی کارهای نیک بکنید پس اگر تو می‌خوای که نجات پیدا کنی و تو مسلمان خوب باشی و مسلمان درست باشی و وسیله نجات بر خود پیدا کنی دو کار بکو چیزایی که امرت کرده اورا بکو و چیزایی که نهی کرده اورا نکن خلاص این نظر مفصلین است بین تفسیر بیضاوی تفسیر بیضاوی میشه ا مات توسلونه بهی سووای ی و زول فمنو به فعل اطعاتی و ترکل معواسی یعنی مگوواسیله چی مگ توسط اطعااعتات ها و ترک گناهان به سووا خداوند خداوان تواصل و خود را به خداوند نزدیک میکنه بییم که تفسیر وید چی میگن؟ میگه وسیله فعیله به معنای یتوصل به و یتقربو الالله عز و من فعال طاعت و ترک المعاصی این هم میگه ای از بگه وسیله که شما را به خدوان نزدیک میسازه کردن اعمال نیک و ترک گناه هست این هم وسیله شد مفسرین اینه برادارای شیعه ما که مذهب شیعه هستن علمای از اینا در تفاصیل خود چی نوشته کردن خب اینا هم نوشته میکنن ببینیم که تفسیر المیزان چه میگر؟ خداوند تعالی در قرآن کریم فرموده خوب گوش می‌گیرین فرموده و الی الوسیلا حقیقت وسیله به درگاه خداوند مراعات راه خداست به اینکه اولا به احکام او علم پیدا کنی و در ثانی به بندگی او بپردازی و در جستجوی مکارم و عمل خب ثالثاً در جستجوی مکارم و عمل به مستحبات مستحبات شریعت باشید اینجا صاحب تفسیر میزان این چی میگه میگه حقیقت و وسیله به درگاه خدا مراعات راه خداست وسیله چی است که تو راه خدا را مراعات بکنی به اینکه اولا به احکام او علم پیدا کنی اول احکام خداوند رو چی کنی به او علم پیدا بکنی بعد از علم پیدا کردی در ثانی به بندگی او بپردازی با خداوند تنتجه بکنی اطاعت بکنی و ثالثا سوم چی کنی در جستجوی مکارم و عمل به مستحات تا میگن مستحبات چیزای خرد خرد که تو به توجه به او توجه نداری میگی مثلا ليش چرا بان یکی یک چیز سنت است یکی گفتم مستحب است گفت نه اگه تو میخی که وسیله نگم خراب داشته باشی لباس تام اسلامی بزاست چری تام اسلامی بزاست درا که دم موتور میای سبحان الله بگو الحمدلله بگو یاد خداوند بکن یک زنه کاغزم که زیر پات افتاد عمورم مدیر رئیس اداره ناشی منایسی یک مسلمان چیکو عطا امشیزای مزوری که در راه هست محیط زیست هم باید پاس بکنید اینو کی میگن تفسیر میزان میگن ببین فشار بده تفسیر تو استاد جان مرا برو کامیاب کو یا تو برو منو آخرت آخر اسلام میفری یا استاد فرهنگ تو الکو آدم هستی با در, در سرپل استرا دست مرا بگی یا مرا پشت کلا بر. من برو برو کک ما در سرپل استرا خودم خدا خونم خدا می چند دفعه لوت می خرم چند دفعه مفتم خودم در چی حالت هستم تو مایی جان خ داو یه مادر بچه‌ی خدا نمیشناسه و بچه مادر خدا نمیشناسه یومیفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه این روز میگه روزیست که انسان یومیفر المرء میگه یک انسان فرار میکنه از امیه از مادر خود مادر خود میشناسه، میشه فرار میکنه کار نگه یک دروکات نماز بطی و ابیه از پدر خود باشه آ، و صاحباتی از امسار خود و از کل بناهی و کل از کل دوستا خود فرار میکنند. کی کس ازش میشمند؟ یه کس میبرد میگه، میبرد میگه که شادجو جان ترچی خوب آدم است. چی خدا بر تو زامن کشیم. قرار شی شابودی دست، آ؟ تکیه زده بودی. میبر پای ارقایم سر که بود بر دست میادم. ولی خیره شدم. میگم میاد یعقوت نماز کردم. یعقوت نمازم کم بود چند. یعقوت آتا کمی تیم موبوک برو برسه جان خانه توابد. هیچ مثلا نمیشنست میشه سالت نبودی. اینال اینال در چی به دردت میخوره؟ اعمال نهی که خودتر. اگر میخوی که قرآن ازی با شا نمیفهمی بینها ان وسیله هم در دنیا خوب است هم در آخرت در دنیا چرا خوب است؟ خاطر ازی که در دنیا هم اعمال نکی خود انسان است هر معاصل که اعمال نکی خود میکنه ای وسیله میشه برای چی؟ میشه برای خوبی هاش و در آخرت هم خوب است خاطر ازی که در روز آخرت هم اینمی اعمال نکی خود ازی سبب میشه برای چی هزی؟ نجاعت ازی خب. من سر واسطه خب بسیاری کسامه که واسطه واسطه بازی بکنیم. این حال میبینیم سر واسطه ببینیم که واسطه چی هست. و در دنیا خوب است یا در آخرت خوب است یا خراب هست یا چطور است. این شما ببینید یک کسی که واسطه میکنه. در واسطه چی گرفت هست؟ در واسطه دو مشکل اساسی قرار داره. تو محصل هست چرا برای ما واسطه میری؟ یا تو خواهی نست یا ما خواهی حتما از باوتودو نفر یک یکی ما خائن هستیم و یا یکی یکی ما خائن نیستیم تو م رو فکر کردی چه قسم مثلا مثال بوییم یا تو خودت خائن هستی که در روز درس ای درس نخواندی زمت نکشیدی که تا متاب هم نخواندی نوات هم نگری کار چکر و گفتی که پانتون پا فقط برای ساتری او برای ساتیر کردن و برای رایید چکرت بزن تمام روز در مبایلکت خواندن ها رو را ماندی و در پاکال لالولنده گشتیبانتون پا جو چی جای درس هست اگر میخواستی که موبایدک در چالان کنی و موسیقی بشنوی می که اون در خرابات تو کارهای خرابات هست آمدی در جای مناجات میکنی خود جای خرابات نیست اینجا خود جای درس هست اگر تو احمق هستی تو لوده هستی تو به تربیه هستی تو تصادفی کامیاب شدی و حق نداشی که کامیاب شوی حداقل یک چهار نفر دیگه دست میخوره اون روز مادر رو پارک سیر میشون کل ماشین چند نفر بیچاره میشه کتابا پیش شارن و بسیار چیز درس خوان دو نفر لعنده قرار خواندن نموندن و یار اذیت میکنن موبایل خودا بلند گرفتن دلم بود برشون بخستم بگیم باز ما گفتیم قسمی آدم بسیار بی‌تربی است که اگر فایده و کله اذیت میکنه ایناله اینی انسان که تمام روز روز خودا تیر کرده و تمام روز خودا در فیشن و در ساتری تیر کردن اینی انسان احمق بلاخره چی میشه؟ ده امتیان؟ ناکام میشه وقتی که ناکام میشه اینال بخاطر از ازی که این خدا کامیاب بکنن چی میکنن؟ و تامن کنه تلفون زنگ میه ولی فلان چیز فلانی یک روز دیدم تکش سلام علیکم سلام علیکم کردم تو امور خی یک دفعه ولی والا ما سینمره بردیم یک 20 شماره یک کمک کن چطور کن کنم ما مصالح چالو کتم در روز امکان ها در وقت امکان تا که نتایج اعلام نکردیم اول تلفون خدا گل میکنیم که تلفن نرسه دو واسطه شد نرس نیستم اتا؟ این واسطه چی شد؟ واسطه در دنیا هم خب بنا اندر این واسطه تو وقتی که واسطه میکنه تو مجرم هستی نیستی؟ این حاله هر کسی که واسطه میکنه از خودش مجرم است یا این که یا این ای مجرم نیست استاد هم میگه که استاد مجرم است. چرا؟ میگه والا بیادر یکگر برد بزنم خبر نداری ای استاد عادت داره که اگر صدام ببری چل میتید میکنه اقا چانس میده خیلی چی تو کنیم واسطه کن بناهن ان این انسان در شکر شک کرد؟ مهربانی استاد چکر کرد یا نکرد؟ اگر تو بفوامی که استاد مهربان است و استاد مثل پدرت است آیا تو برش واسطه میبری خلاص میگه من درس خواهمیم زامت کشیدیم. و استادم هم همی تقاضا را داشت که باید مادر بخانوم و داماد بکشم حالی که مزاممت کشیدیم صد نمره میبرم استادم ظالم نیست خیانتکار کار نیست حق کسی را نمیخورد بنا ان استاد هم بر من نمره می چی چیکنه نمره بر من میتن. وقتی که استاد بر من نمره میمیت ها اگه صد بوردم صد افتادین پس چیز جور داری دوریک تو بری واسطه بکنی بنا ان در واسطه کی مجرم است یکی از طرفین مجرم است یا مجرم شناخته میشه یا ظالم شناخته میشه من اش ظالم نیستم ولی تو مرد ظالم فکر میکنی مثلا اگر مثلاً مادر دارم وقتی که مسلما ناود پاین بیگر پاین امروز برایش میتونم بگمی باش که صد شبکه خوب تصویرش باشه اگر صد بیگر پایین امروز صد آفرید ولی یک نفر از پشیما چی میاره وسط تا میاره مجبوره دکه تو یک نفر از پشیما وسط تاوردی معمولاً که شاعر تابال مرا نشبه. نشبه. نشبه. اگر نیمه کتونه دشمنی دارم هیچ شاگرد مرا بده نمیه اتا همون شاگرده که بد اخلاق آمه هست مریض هست مریض چند قسم هست مریض ما یک روز در سوار شدیم در موتر تونس یک محصول دیدم که قرار ششته و پایای خود در می سره اما ماشید که از ده سر دید قرار ششته و پایای خود و ما در پشت سر هستیم خب یکی از دوگه هم در پالوی من ششچه و این معصر قرار پای خود طرف انداختان هم چیز میکنم من دگر ششچه روی خود این طرف کلکین یا چی داره کاغذ بشه مطالعه میکنم خلاص که موتر عرکت کنه برن یکی اسمه هم بگه استاد این معصر چی کرد؟ پایش هم نهیدی؟ من چیمه نیستم که دیگر بگه استاد اک پایش دیره آخر من گفتم خب چی, چی کنیم؟ که که شد چه کار میکنه یک مسئله پانطور نیست یک کس است که کل دنیا برای تمام افغانستان برازی امیدوار اومیدواردن که ای ای یا راه اینجا ایوترن اجور میکنن یا اینجا اولادای ما را تربیت میکنن از اینا استادا میشه یا که ای کار را بکنن خوبو به چرا شیر سادی نخوانده بود که سگ بدریای هفت گانه ماشوی که چطور شد پلیتر بود شد خاره ایساعلش و مکبران که چطور شد پلیتر بود شد او کسی که تربیت دوازده سال در مربوطات وزارت تعلیم و تربیت گرد زدن خدا یاد نداشته. یعنی می‌تونی کسی رو دوازده سال در مربوطات وزارت تعلیم و تربیت درس خونده. و چندین سال آشنا سال داره فامیل خود، ازندایی که پیش پدر و مادر خود، طاویل آداب گرد زدنه و آداب ششتنه یاد نداره. گرب که می‌دونه فکر می‌کنه که جنگ میکنه و آدمی که می‌شینه فکر می‌کنه دو طالب بابای ولی ششته. اینا لقح مشکل ازش. ببین برادر جان. رای هلجی از گفت رای هلجی و ترس استاد گفت خب چی مشکل داره مست مریضه بیچاره گفت نه مریض مریضه ناسوسای که برادر آخر می خوام اینو کانال دادم که هلجی می گفت تو با من خودم چرت میزنم و کدوم فکر هستم تو الهام میتی چیکو نمی با نفر گرفتی گفت نه استاد ولی که من فلسفه‌ام گفتم برادر آخر گفتم چاک مشکل داره چی مشکل داره مفهمم یادت که پایش شکست سهیدنی پای خودت قاط کرده نمیتونه بره وقتی که پایکاست کاس نمیشه نماز مقت داره پای خودت یا مترز بیچاره ما تو چی خبر داریم یا مریض بیچاره مانده و زله هست اولش پاش قاط نمیشه از اینه ماندگی و دردی که پاو هم تو پای خودم جا مانده ما تو چی خبر داریم پایش بیچاره پای خودمون تو مانده خوب شد خودم گفتم چی گفتیم یا مریض اخلاقی است بی‌تربیع است وقتی که بی‌تربیع است اینا مت بی‌تربیع مختشره بیچاره پدر خودم پاش دراز است به جوری مادرش هم پایش داره است. دیگه استاد شد. یک نفر که در قصه فدر و مادر خود نشد در فامیل خود نشد دیگه پشت ما و تو چی میگردن این هم یک نو مریضی هست باز خناهت بگی فخور است. خلاص یا پایش لنگ است. یا پای درد و یا پایش مشکل اخلاقی داره زده ایگه پختگان نایت صدای زده ایگه پختگان نایت صدایه خروش از مردمانه. خام خیزه دو کس که خام است یا مثلا انسان مثل دگه پک پک پک پخ وقتی که پک پک میکنه دیگه شولا تا وقتی که خام است میگه از کسرات خامی که در جوش و خروش هست چون پخته شد و قابل دم گشت خاموش است و مثلا که دیده که مثلا از شبوار از خیزک میذانه و به گل مال کردنه گردن کردنه و وطنک میپسته اون را به اون بیچاره روز خام است او خامت بسیاری خودش فکر میکنه یا دانو خودش کنترول کرده نمیتونه نمیشه لبایش بسته نمیشه اما تو خرار دانکش واده مفامو هر وقت که پختر شد قابل دمگش خلاص سرکش خمست که تا بکش اما تو آهیسته آهیسته میره واسطه در دنیا کار خوب شد یا خراب واسطه یا به خاطر ازیم میکنی که خودت مجرمسی ویا واسطه برای ما خاطر از این میکنی که مرا مجرم فکر میکنی و در مهربانی ما شک داری مشرکین قلعه چی عادت داشتن در واسطه در مسائل آخرت میگفتن ساید ما روی هستیم؟ ما شرمنده هستیم؟ اینی لات و منات و حبل ایبوت ها که هستن چی هستن؟ دوستای خدا هستن ما پیش لات میریم میگم ای می لات جان آه میگه لات خدا مادم بد نبود این دوست خدا بود امینی بودایی ها که پیش بودا میرن مگه بودا پیغمبر بود ما مر پیش پیغمبر پیش مجسمش ما مجسمه ازو پرستش نمیکنیم فقط میریم اینو وسیله میگریم برای چی واسطه خود واسطه میگیریم خود میگیم وسیله میگیریم میگم ما اینو پیش خدا چی میگم من ریاستم من شرمنده هستم. بود دوست خداست خداوند دور از ما من میخوایم که توسط اینمی شخص رو به خدا به او چی بسازم قریب بزازم قریب بزازم لیقربونا الله ذلفا آیه قرآن است بود پرستار وقتی که میگفتن که چرا شما مله پیش دی بت عبادت میکنین میگفت ما نه عبادت هم الا لیکربونا إلا الاله ذلفا ما اینا را عبادت نمیکنیم بخ... مگر بخاطر که اینا ما را به خدایی بزازه قریب بزازن الاتی مناتی فلانی فلانی کلش بت که ما را به خداوند نزدیک میسازن بنا ما بخاطر نزدیک ساختن خود به خداوند پیش ازی بت ها آیه قرآن نازل شد برشان گفت که صحیح کن و پیغمبر شده هم گفت که ای پیغمبر خدا اذا سألک عبادی وقتی که سوال بکنه از تو کی سوال بکنه بنده های من بنده های بود که بدل خود بودها پرستش میکنه و دلشان کسی که بود پرستش میکنه و دلاکش بایس کلاکش خو اما گفت اذا سع الک عبادی خداوند متعال چی میگه میگه وقتی که ای پیغمبر خدا اذا سع وقتی که تو را سوال بکنن عبادی بنده های من عنی درباره من تو را عبادی گفت بنده های من میگه به خاطر کسایی هستن که بنده های بندگی خدا را نمیکنن بندی بطحاء هستن بندی خواهشات نفسی خود هستن بنده رواج ها و کلتور و انانات خود هستن بنده جای هستن که درو زندگی کردن، بدن فرساد جای زندگی که امو یعنی تو عادت کرده میگه من یادات خود تغییر دادن نمیتونم اینو تو عادتم اصلا اینو تو شنیده می نت مغزم پر است خلاص دیگه بعضی ما پرال جی بی مغزم... جیبی داشتم کلش فول شده دیگه ما هر که بارش کات کنی و پست کنی قبول نمیکنه ریویوز نگنه نه نو پلیس خداوند متعال عرض کرد که اذا سعلك عبادی وقتی که سوال کرده از تو عبادی بنده های من چون مسلمان هم نمیانن در مورد خداوند متعال پرسیدن میکنن که ما چیکو کنیم یا خین تو میکنن یا که میرن پیش از این اشخاص ای پیغمبر خدا ما چیکو کنیم خداوند دور است مثل پاچه ها وارست که ما بریم پیش ها از طریق وزیرش، کارترش، رئیس دفترش ما خودمارش پیش کنیم چون مشرکین امشب خدا رب کیتش می میکنن با مخلوق می گفتن خداوند مثل پادشا پادشاه وارث باطی‌ها چی عادت دارن عادت پادشاه است که مثلا من میخواهم پیش پادشاه برم نمیتونم پیش از ببرم پادشاه دور از اونجاست میرم پیش سکارتاش بیاد را ای مرخو بمو پادشاه یک چیز کن. تو رئیس دفترش هستی تو همه مرا کمک میکنی دیگه وزیر شدی تو خوب روی دار هستی بسیار خوب آدمی هستی تر میشناسه اون دیگه بچی کاکایش است تو خوب بچی کاکایش است ای مرخو بردم برسان اینالی‌ها میگفتن که این الاات و مناات و کس یا چی است وزیرو کرتر و بچه کاکا و بچه مامای خداست علیه ما رو به خدا نزدیک میکنن خدا هم گفت که اداسته علا که یعنی وقتی که بنده های در مورد ما پرسان کنن فا اینی قریب خداوند هم گفت من به بنده خود بسیار نزدیک هستم و باز آیت قرآن دیگه چی میگه میگه و نحنو اقرب و الهی من حبل الورید و ما به این بنده خود نزدیک هستیم از کردن حبل هم حمللووریید شوارک گردن هم میگن اینشاراک بین این قسمت انعار گفت وقتی که بنده های م در موارد مپرسان بکنه و به بند خود ازی که نزدیک هستم؟ از شواراک گردان که به بنده خود نزیک هستیم وقتی که خداوان میگه من بر تو از شواراک گردن نزدیک هستم وا بنده خود به چه هم نزدیک هستیم انعالا ما اتو مسلمان چه قستم باید خ در روشا باشیم آیا از خداوان که در کسی دیگه بر ما مهربان تر است؟ نه؟ آیا از خداوان کده و ماکس دیگه نزدیک تر است؟ پس ما چرا ذاتی که نزدیک از ایده تر کنیم پیش کسایی دیگه چرا؟ شما ببینین؟ من بسیاری وقتا این مسئله رو نگم یک عقیده که طفل و مادر خود داره طفل و مادر خود چقدر یقین داره یه چه در مسئله اعتقادی گپ یقین است گپ ایمان است گپ باور است که به جانب مقابل چقدر یقین داره یک طفل و مادر خود چقدر یقین داره مادرش یک دفعه که سیلی میزنهش باز مینده آقاش مادر خود مرتبه دیگه بود که سیلی میزنش باز مینده آغوش مادر خود سه و مرتبه باز میزنش که برو گم روز روزو برو باز مینده آغوش مادر خود بالاخره چهارم مرتبه مادرش میفهمه که این enemy اولاد من ها اولاد من میگه او بچه جان اینا ول چرا اینمی طفل پیش زن همسایه نرفت ها به حاضر ازی که این تفل یقین داشت یقین داشت یقین داشت که از مادر کنه هیچ کسی بر من مهربانتر نیست. بنو ان هر قدر که مادر دل کرد، باز هم به با پیش مادر خود راست. اما اگر مایندر ما باشه، باز مجبور است که تلفن خدا میذاره، تلفن میگه میره پیشه، زن هم سایه میگه خاله‌جان مرا ماینده رو میذاره، باز میگه خورجان ندان گناه داره، استو از خدا بترس. باز دیگه نمیگه. پس انول اینمی یقین که یقین که یک انسان یک انسان یک طفل به مادر خود داره ایناله تشبیه نباید بکنیم اینامو تو یک یقین قوی یکی که در قوی تر یک انسان مؤمن موحد بکی داره و خدای عزبجل داره میگه که هیچ کسه هیچ پیغمبره هیچ دوست خدا هیچ آلویت پیغمبره هیچ صحابی، هیچ ملایکه از خدا که در مهربان تر نیست اگر ما بگویم مهربانی حضرت محمد هستم به اندازه کوهای افغانستان است، تیز؟ اما مهربانی خدای عزواجل ما گفتن نمیدونی که به اندازه کوهای دنیا هست چون مهربانی خداوند هیچ اندازه نداره پس ما به پیش کی برم؟ او کسی که مهربانیش اندازه داره و یا او کسی که هیچ مهربانیش اندازه نداره بناهن یک موحد قرآن شناس. حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و پیغمبر و صحابه کرام عقیده داشتن که هیچ کسی بغیر از الله به اونا نزدیک نیست و هیچ کسی بغیر از الله به اونا مهربان تر نیست بنا هر مشکلی که می داشتند می رفتن میفتن یا رب یا رب یا رب یا الله یا الله تو مشکل مار حل بکو یا الله تو بر ما اولاد بده چون الله جل جلاله بر کل لگی مهربان است بر کُلگی کل اونمو خدای هست که بر کل لگی دو چشم داره اگر می چشما بده امریکا ای می بود نه می گفت مردان با شما رو کل ما رو چی میکرد ها نمی نمیاد می شما چی میکنید افغانی ها نمی گردین تو ساختن تیز بشید می زنی اگر چششم بازه اروپا ای می بود نه می ما خود ما 3 تا چار 4 تا می گیریم دو تا پیشری ما چشم داشتمش امریکایی سیم دو تا پشت سر اما شما افغانی نشداشته باشید اما ذات خدای عزوجل که مهربان است بالای کلگی برای کلگی دو چشم داره عطا و سر سختترین دشمن خود هم بهترین نعمت ها می چرا می میگه باش که اینمی دشمن من فکر کنه نعمت ها رو ببینه علامه قراتی یک عالم بزرگ ایرانی این میگه میگه وقتی که اولادت نماز برش نمیخوان خوان برایش نگو که بخی نماز بخوان برایش نعمت های خدا رو بیان کن که بخبچ این چشم های ای چشمای قیمت از این چشم ها هزار دلار است برو و بارگاهی خداوند سجده و تشکرت از این چشم های و کویک از قبه ت کویک از اون گشاید اگر گشید کمکی می بود نمی بودی بغلاش مجبور یک روزز دکترا دا این قسم ها خیگاه های گوش قسمت هایش موما گذاشتن. وقتی که موم گذاشتم وقتی کو نفر از سلام کرد خاالت س او خالد از سلام و پشتر این سلام کرد رو پش در خصل می کرد. بر عنوید ساختمان رو که دستداد گوش و تو امرت سامیین ترتیمه که داره کردن ذات مهربانی کردن که بالای تو بسیار مهربان است گوش تو گوشای پیغمبر گوشای صحابه کرام، گوشای آلبک کل بیگ کلگی ساختمانش اینمی قسم بود. کلگی نیم دچشم داشت. نه هیچ کتاب نامه‌ای که فلان نفر 4 چشم داشت، فلانی تا 80 چشم داشت. او بو خوب بود برای هستن که میگه بو ما مثلا سیدی داره، یک دیس اینجا بر جلو تا یک دیس اینجا، یکی دیگه میگه، یکی دیگه یکی دیگه، یکی دیگه تا جور کنه. خوب بود پرستاست. دوست خدا بود، داشت. قدید دست خود بینی خدا پاک کنه قدید دست دیگه بازی دیگه لالو لالو بگه قدید دست دیگه باز زمین نگاه کنه یه قسم عقیده بود اما ما موحدین چه عقیده داریم کل پیروه هزت محمد هم عقیده دارن که خداوند متعال جل جل هو ذات مهربان است رحمان رحیم است و همیشه میگیم بسم الله الرحمن الرحیم همیشه میگیم بنام خدایی که بخشاینده و مهربان است حتی برای دشمنهای خود حیکریمی که از خزانه غیب گبر ترسا و ذی فخورداری دوستان را کجا کنیم محروم تو که برای دشمنان نظر داری یعنی ذات کریم است که حتی برای دشمنهای خود هم نعمت های بسیار زیاد میده دهد برای اندروازی رحمت خداوند همیشه باز است و ما عقیده داریم که خداوند از هر کس برای ما تر است و از هر کسی دیگه‌ای که برای ما نزدیک تر است و خداوند هر چیزی که بخوایم بر مع معتر و هیچ و خداوان سرکس دولم نمیکرده که ما بر تو برای براز نیدیم نه بر کوولگیام قتم دو چشم بر تو داره بر ما هم دادن ام قلب بر تو دا بر ما هم داددن اگر این حال بسته و می بود مک و چش ما میدادم یک چشم برث میدادم، دادم و چشم که کو یکغللا سیل می کردیم مثلون برم دت هست. اما این خدای رحمان رحیم است که دو چشمه لکس بر تو هم دادن بر ماام این سیود دا دندان داد دانکبرادار از بازسقدم مینی تشکروری کوداواده بازقدم متعجبه به خاطر چی که این میاکانه که تو چابه با مثلا بالا بالا دل میری. باب خدا شکر، این میاکت نمیتونه خدا یه ساله مگه کارو؟ اینا میاکت لغت چشمای خوبش، بینی بسیار زیبا، چهره بیت، لحات خلاق نال انسانه. فی احسن تقریم. چهره زیبا را خداوند بر تو خلق کرده. در دو پای رامی ری، بعد ازت غذا میکورید، دستایش چشم است کلی چیز کار میکنه. این خلاص ما به چهار شاید اگر بودیم اگر جای ورزی فرمیم را ده صد دلار می‌ده. تو وقتی که اقدر کمالداری و عقلداری و دانشداری تشکری کن که کی به تیشمه داده کی به دست داده پسید ذات رحمان و رحیم است ار وقتی که بخوای در رحمت رحمتش مقابلت بازه اما کی واسطه میکنن کی واسطه میکنن اون مردم های واسطه میکنن که تمام روز دول میزنن میرخسن زنا میکنن جنایت میکنن و جا آزان میتن و خرار و که ششت به این میکنن عتمان دلشان یک شک میاد که من با خداوند نمیرم خداوند من پیش خداوند روی هستم چرا ریسی سیستم پیش خداوند چرا ریسی ها باشی خداوند میگه قل یا عباد الذین اسرفوا علن پس لا من رحمت الله اگه زویی که شما اشتباه کردین یا گناه کردین بگو برایشان که سالی که زیاداره بکنه لا تقنطوا من رحمت الله از رحمت خداوند نامید نش خود نامیدی کسرت تو که میگی من روی هستم ناامید هستم خدا مرا نمیبخشه این یعنی خودش بدبینی و لا تقن تو کبتر رحمت الله خداوند تمام گناه هارمی میبخشه اگر اشتباه هم کردی این درگه ما درگه نامیدی نیست صد بار اگر تا وابش کردی باز صد تفا مختلف توبارش کسانی خداوند در وادی رحمتش باز است این میله اگر گناهی که تو دوست دی بچشاد دیشو کردی اگر ما به فهمم دست نفهمایی ما اما خداوند صد مرتبه در گناه ها صد ها گناه سر دیده لکن خداوند رحمان رحمت صد تارا صد ترمیک نکنه کل گناه های انسانه بنایم جانا، فاسرمیکنن. پس ما به اون زاتی که ستار است، رحمان است، مهربان است، از هر کس دیگ مهربان تر است، چرا به اون رجوع نکنیم؟ ادعای کسایی که واسطه می و میگم من میرم پیش فلان شخص، این شخص دوست خدا هست، ای که میرافتن بوت پرسافیش اللات و پیش بل و منات، یا مشکل داشتم، در دیگه خداوند میخوان، از ما دور است. ما میخوایم توسط از هوبل، تواصلی لات خدا به خدا نزدیک بسازیم. ما موریسو هستیم این دوست خداست اینو من ذکر ای میسازه یعنی خداوند مهربان نیست ما توسط و هوبل مهربانی خداونده به خود جلب میکنم در حالی که خداوند میگه مهربانی ما چه وقت به تو جلب, جلب میتونی بکنید و جد وقت عرب سجده بکو خدا به خدا چی گفت این سجده نمیکنید نه نماز چی کنیم برای برادر برادرش نماز نمیکنیم خدا میگه سجده کو که قریب شوی میگه نماز نمیخونم این شد موضوع واسطه که واسطه در دنیا هم چیز بد است و در آخرت هم بد است یک نقطه که شفاعت است شفاعت چی هست؟ اول ایده باید در نظر داشته باشیم که شفاعت در روز قیامت است در دنیا شفاعت شفاعت نیست بود فرستا بسیاری وقتا بود های خود می رفتن می رفتن هاولای شفعانا عند الله گفتن پیش بت‌ها چرا میرن شما قران رو در قران عظیم شان چی میگه میگه بود پرستو که این بت‌ها شفا, شف... شفا شفا شفاعتگرای ما پیش خدا است. خداون بر شان میگه که یا چی کاره هستن که پیش خدا هستند پیش خدا رو قبض دادن نمیتونن این را که سنگ‌ها این کلش یا ایزم دوزه هستن ای بت‌ها و ناس و الناس و الحجاره یا ایزمهای دوزخ هستن این سنگ‌ها کلش از دوزخ هستادگیه چرا کردن میتونن منزل ایلا کی میتونه پیش الله جل جلو شفاعت بکنه الا به اذنه مگر به اجازش از این خاطر ما در احادیث میخوانیم که پیغم بستم اتا در روز قیامت وقتی که میخواد که مردمش شفاعت کنه مردم میرن کلگه پیش آدم علیه السلام برش میگن که ای آدم علیه السلام تو عبو بشر هستی تو بسیار اولین شخصیستی که خداوند مطالطه را خلق کن تو ما شفاعت بکن که بسیار وضعیت خرابت عرق است گرمی هست کمی ترازو میزان گذاشته شده جنتی به جنت بره دوزخی به دوزخ بر هر کس بهش خود هست حضرت آدم اصلا بری, بری بری نفسی نفسی ما دیگه جان خلاصم برو روی تاب بی باز میام پیش نوح علیه السلام این نوح علیه السلام تو آدم بسیار خوش شخصیت بسیار عالی هستی تو بسیار خوب آدم هستی تو اه؟ تو بسیار آدم خوب هستی تو برام چیکو شفاعت بکن ها نوح علیه السلام چی میگه؟ نوح علیه السلام برش می که نفسی نفسی ما در جوان خود است پیش ابراهیم علیه السلام میره، ابراهیم علیه السلامم چی میگه؟ میگه نفسی نفسی ما در غم خود هستم. نفس ما در نفس خود هستم که باش من خودم چطور کنم خداوند متعال برات. به آخر میایم میایم پیش حضرت محمد صلی الله علیه و حضرت محمد هم عقیده داره, داره که خداوند متعال برات گفته که ولا سوف که ر که فطر دو خداوند بر تو رو میده که با تو راضی میشی. پای حضرت پیغمبرم میره ادب یاد داره، ادب. چه قسم ادب یاد داره؟ راستن میخیده و میره در مقابل خدای عزوجل در این میدان حشر، کل مردم چیز میاد، میره سجده میکنه. میره در بدربار خداوند سجده میکنه. وقتی که سجده میکنه، خداوند مطال برش میاد، میگه بلند سرته؟ اینجوری جای جای سجده است. حالا روز روزه محاسبات بسیله که تو کتاب نخونی یا کتابی شدی ماندگیش نه، حالا کتاب که منی دیده ایم، اینا باید آن رو فلم نه؟ باز در روز امکیان وقتی که که امکیان است، تو میخوای که ساده اگر داد کبوخ کنم، میننن. عالیه وقتی خاندان خاتمه. عالی وقتی امکیان است. در روز قیامت خداوند متعال برشپیه که عالی وقت سجده است. بلکه کسانی که عالی وقت پاداش است. عالی وقت محاسبه هست. چی میخوای پیغمبر خدا؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم خداوند عالم غایب است. ما میفهمیم که پ برای هممثل هم میبلم تو اعتم یک پرودات اگر امی ترازی میزان گذاشته شود که بنده ها از این مشکلات در مشکلات روز قیامت گرفت هستند از این مشکل خواه روز قیامت بیا و من مقدار رو خمسین اللف س به ماتوددون اونجا آفتاب مطاب این روز هست که ما توششا روز تتاب کنیم لکن در آیاات آمده که یک روز قیامت به اندازه یک هزار روز دنیا هست یک هزار سال یعنی روز بسیار طولانی است. سیاه‌اندازی پنجاه هزار سال است. بسیار روز طولانی است. چون وجه ای افتاب امروزی روی زمین نیست که ما بگیم که زمین میگرد و تاگرد افاق مگر چهار ساعتی جا باشه. خلاص اونم روز روز قیامت است، روز محشر است. خلاص نشراست، روز است،, است. اونجا الهات است. کلگی منتظر هستند. روز طولانی است که تا کلگی منتظر هستند. بله حرمه ای پروردگار. خداوند متعال جل جلاله امر میکنه. انور پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام، این خداوند متعال میگه که من ذلذی یشفع و عنده الا بیزنس کی میتونه که بهش خداوند متعال شفاعت بکنه مگر به اجازهش بله با اجازه خداوند نگه بنا در روز قیامت شفاعت با پیغمبر صلی الله علیه وسلم باصحابه کرام با آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله برای حقیقی که در بخاطر ایلاء کلمت الله شهید شده باشن برای مجاهدین اسلام که در راه خدا بخاطر ایلاء کلمت الله به ضد کفار جهاد کرده باشن برای های حافظ قرآن برای علماء برای شخصیت‌های با تقوا ما هر کس مطابق رتبهش خدا هم در چی میده حق شفاعت می خب الان موضوع است پیش خود پرسان کنیم چه قسم شفاعت میکنه مثلا یک نفر است کل زندگی خودم مثل زندگی رسول گرامی اسلام سفری کرده لکن از پیش اشتباه شده غلطی شده صحبه شده بعضی گناه ها را کردن مستحق حضید که یک دو روزا دوزخ برن پیغمبرست هم, هم شفاعت میگه پروردگار ها اینه امت محف اونسک و آرنج های شسای کتابه میگه امت خدا پیغمبرست هم از آثار وزو میشناسن میگه مثل از دیگه کل چینی انسان سیاه میگردن روی انسان و دستای انسان که تا قسمت های میگه تا وزو که کردی آرنج های تا نشوید اگر میخوای که سفیدی در روز خیامت زیاد شد بالا هنی قسمت های تا که ت ش تا به این یتگه باشین سووا داره سبت تا به این اما اگر میخوا که چی شود یه خسمت هاش هم کشه و پر تو تو تاکه پای که شووشی آثار چی هست؟, آب هست؟, آب هست؟ آب بل بل هست بل بل بل روشن روشحنششه اما دیگه اعض بدن انسان سیاه هست کب در روز قیامت بم بس هم از ایننه چهره ها امت خنمشون ن میلو که در اعاببر چهی کردم اونجا ملیکا بشمین که ب چهاره دق کارا کلشکون. نشان میده پروژکتور کل اعمالش معلوم دارد، اعمال نامیش است مگر دروز باید در دوزخ بره مگه یا پروردگار همین امت ماست دروز دوزخ نه را خیلی سمیره ما شفاعتش میکنم این حالا آیا ما کاری کردیم که شفاعت پیغمبر را بر ما جفت کنند و که مثلا پیغمبر را داشنام میتودم مخالف پیغمبر بیادبی ادبی میکنه و غیر از خدا حتی پیغمبر صلی الله و با بی بی فاطمه زهرا سلام الله ها چی گفت گفت یا فاطمه بنت محمد ای فاطمه دختر محمد صلی الله علیه سلام. اعملی لنفسی که بر اعملی لنفسکه یعنی خودت عمل بکو اینی لا اغنی که من الله شیء من هم میتونم که اگر تو خودت عمل نداشته باشی من بگم که برو دختر پسر نوح بوابدان بنش از خاندان گم شد تو نکنیم از لپس سرانو که خاندان نبوده تکمیلی. ازی خاطر با تقویت رنده زمان پایگانبار صلی الله علیه و سلم بیفاته بی مات الزهراء سلام الله علیه بود. از آن مگه تقویت زیاد بود؟ عضو میگو که مرا شو دفن کنن تاکه ای که کت جسدم مرا نبینه. اجوابو، و, و، حیاو و ایمان و تقوا، کلی در وجود داشت بود. نه بخوا... بی بی فاطمه رو به چهری کس اونام نشه. فکر میکنه والا فاطمه به خاطر از این مقام عالی داشت که دختر پیغمبر بود. شاید دختر پیغمبر بودنش هم یک شرف است، لکن خودش با شخصیت عالی و ایمان قوی که داشت از اون خاطر او بیبی بی فاطمه بود و سید زن‌های جنت است. سیان رهبر زن‌های جنت از بیبی فاطمه و بی بی و بی بی مریم. سلام الله علیهن اجمعین. حتی پیغمبر نمیتونه برای یک مشرقی که شرک آورده باشه و با خداوند کسی دیگر در عبادتی یا در طاعت شریک کرده باشه حتی نمیتونه که دوستای خودش شفاعت بکنه دوستش که ایمان برده باشه با ایمان مرده باشه. ولی اشتباهاتی کرده باشه از امتش حرکته میتونه. بیبی بی فاطمه میخواد شفاعت بکنه. شفاعت کی رو میکنه؟ شفاعت کسی رو میکنه که زندگی خود هم مثل زندگی بی بی فاطمه سفری کرده باشه. حجاب بی بی فاطمه در سرش باشه. لباسش مثل بیبی بی فاطمه باشه. آروزیش مثل عروسی بیبی بی فاطمه باشه. زندگی 24 ساعته مثل بی بی فاطمه باشه. بعضو میگه خدای یعنی دختر مسلمان مثل ما ورا 24 زندگی خدا ساخته بود، لکن بیچاره اگان اشتباه داشت. اما یک دختر که تمام زندگی خود مثل سندو و راه سفری کرده چادر و چادر و داروسی سرلو شده مقابل مردم استاد میشه بازی هم منتظر شفاعت از اونا هست این انسان باید ما خودم واسط پستم که ما چند درصد میتونم که شفاعت از اونا رو به خود جذب کنم و شفاعت از اونا به شکل جاد میشه که تو سیرت از اونها را در سیرت خود تطبیق بکنی شخصیت از اونا را در شخصیت خود تطبیق بکنی اونا به خاطر امام حسین به خاطر با خاطر رضایت خداون خدا شهید ساخت به خاطر که یک ظالم در سر قدرت نباشه خدا و فامیل خود به شهادت رسن پس تو باید زندگی تا شخصیتت تا مثل شخصیت امام حسین باشی امام حسین در لحظه که میگن زخم دیده بود کل بدنش میگه زخم خورده بود و خون از بدن جاری بود ترسان کردن که وقت نماز داخل شده گفتن بله وقت نماز داخل شدن یا نگم نماز دارین بر نماز تجک کرد در وقتی که خونا از بدنش میرفت، لكن نماز خودو ترک نکرد. و تو میگی که والا من پیرو امام حسین هستم، ها؟ کلیت چیه؟ قبلا راه نمیشناسی که کدام طرف است؟ موضوع تو همان است بلکه وقتی که من پایراوی از او هستم یا پایراوی از حضرت محمد الله علیه و آله هستم یا پایره از حضرت عمر یا ابوبکر یا بلال حبشی یا بیبی سمیه یا بیبی بی خدیجه یا بیبی عایشه بی یا بیبی بی فاطمه هستم پس من باید زندگی 24 ساعته سیرت از اونا رو فهمیدم در زندگی خود تطبیق بگم اگر باز کدوم اشتباه شد با خداوند ذات رحمان رحیم است همین که برای اونها فرصت شفاعت هم میده از رحمت خداوند است می خوام اینکه از دوزخ خلاص کنم تو مصداق چیزی که یک دروزه دوزخ بودی، لکن باز هم برای یک راهی خلاصی از دوزخ پیدا کرده، میگه اینا اینقدر خدا از دوزخ نجات داده، لکن 5 روزه که اتیا 10 روز دیگه یک ماه مانده، باز میخرد و با دوستای خداون، باش که برای این اینا یک راه دیگه جور شوه، این شفاعت شاوتر از دوزخ نجات بده. این هم از رحمت خدای عزوجل است. که تا میخواد که برکتایی که مفتیت کردن، گناه کردند، بازم اینا رو به دوزخ نبره. پس یک انسان مسلمان موحد همیشه عقل به چی می داشته باشن؟ با وحدانیت خداوند و به توحید خداوند و به مهربانی خداوند و به نزدیکی خداوند به این عقیده می رسه بشه. لکن یک کلمه را آخری برسانم که خداوند نزدیک است. لکن باید اون تو فکر نکنی که مثلا من برای نزدیک هستم مثل ما دو نفر. ما مخلوق هستیم. این نزدیکی مخلوق است. اما نزدیکی خالق با ما چه